اگر به کوی تو باشد مرا مجال و سول به دولت وصل تو کار من به اصول قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا فراغ برده ز من آن دو جادوی مکبول چو بردر تو من بی بی زر و زور به هیچ باب ندارم ره خروج و دخول کجا روم چه کنم چاره از کجا جویَم که گشته ام غم و جور روزگار ملول من شکسته بدحال زندگی یاوَم در آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول خراب ترز دل من غم تو جای نیافت که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول دل از جواهر مهرت چو سیغلی دارد بوَد ز زنگ حوادث هر آینه مسقول چه جرم کرد دامه جان و دل به حضرت تو که طاعت من بی دل نمی‌شود مقبول به درد عشق بساز و خاموش کن حافظ رموز عشق مکن فاش پیش اهل حقوق